معنویه، مانویه، مولوی برنامه سیوم. شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس. با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند که سلام ما به قاضی بر کنون بازگو آزار ما زین مرد دون که در این زندان بماند و مستمر یا و تاز و تبلخار است و مزر چون مگس حاضر شود در هر تاهم از وقاحت به سلام و به سلام. پیش او هیچ است لوتش است کس کر کند خود را اگر گوییش بس. مرد زندان را نیاید لقمه ور بسد گشاید تعمه در زمان پیش آید آن دوزخ گلو حجتش این که خدا گفتا کلو زین چونین قهت سه داد داد زل مولانا ابد پاینده باد یا ز زندان تا روت این گامیش یا وظیفه کن ز وقف ای عیز تو خوش هم زکور و هم اناس داد کن المستغاس المستغاس سوی قاضی شد وکیل نمک گفت با قاضی شکایت یک به یک خاندو را قاضی از زندان به پیش پس تفحص کرد از اعیان خیش گشت ثابت پیش قاضی آن همه که نمودند از شکایت آن رمه گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردریگ خیش شو گفت خانمان من احسان توست همچو کافر جنتم زندان توست گرز زندانم برانی تو برد خود بمیرم من ز تقصیر وکد همچو ابلیسی که می سلام رب انذرنی الیوم یوم القیام کند در این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را میکشم هر که او را قوت ایمانی بود و از برای زاد ره نانی بود می ستانم گه به مکرو گه به ریو تا برارند از پشیمانی غریو گه به درویشی کنم تهدیدشان گه به زلف و خال بندم دیدشان قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این در خم است. از نماز و سو مست و بیچارگی، قوت زو قاید برت یک بارگی. از تیز الله من شیطانه، قد هلکنا آه من تغیانه، یک و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او او می شود هر که سردت کرد میدان کو درست دیو پنهان گشتند در زیر پوست چون نیابت صورت آید در خیال تا کشاند آن خیالت در وبال گه خیال فوجه و گاهی دکان گه خیال علم و گاهی خانمان هان بگو لا حول ها اندر زمان از زبان تنها نه بلک از عین جان تتمه قصه مفلس گفت قاضی مفلسی را وانما، گفت اینک اهل زندانت گواه گفت ایشان متهم باشند چون می گریزند از تو میگیریند خون از تو می خواهند همتا زین غرض باطل گواهی میدهند. جمله اهل محکمه گفتند ما هم به ادبار و بر افلاسش گواه هر که را پرسید قاضی حال او گفت مولا دست از این مفلس بشو گفت قاضی کش بگردانید فاش گرد شهر این مفلس است و بس قلاش کو, با کو او را منادا ها زنید تبل افلاسش ایان هر جا زنید. هیچ کس نسیه به بدو. قرض ندهد هیچ کس او را تسو. هر که دعوا آردش اینجا بفن، بیش زندانش نخواهم کرد من. پیش من افلاس او ثابت شده است. نقد و کالا، نیستش چیز بده است آدمی در حبس دنیا زان بود تا بود که فلاس او ثابت شود مفلسی دیو را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما کودغا و مفلس است و بد سخن، هیچ با او شرکت شرکتو سودا مکن ورکنی او را بهانه آوری مفلس است او سرفه از وای کیبری، بری حاضر آوردند چون فتنه فروخت اشتره کرده که هیزم می فروخت کرده بیچاره بس فریاد کرد هم را به شاد کرد اشترش بردند از هنگام چاشت تا شب و افغان او سودی نداشت بر شطر بنشست آن قهد گران صاحب اشتر پی اشتر دوان سو به سووو کو کو میتاختند تا همه شهرش ایان بشناختند پیش هر همام و هر بازارگاه کرده مردم جمله در شکلش نگاه ده منادیگر بلند آوازیان کرد و ترک و رومیان و تازیان مفلس است این و ندارد هیچ چیز خرص تا کس و را یک پشیز ظاهر و باطن ندارد حبه مفلس قلب دغای دبه هان و هان با او حریفی کم کنید چون که کاو آرد گری محکم کنید ور به حکم آرید این پژمرده را من نخواهم کرد زندان مرده را خوشدم است او و گلویش بس فراخ با شعار نو دسار شاخ شاخ گر بپوشد بهر مکر آن را آریه است آن تا فریبد آمرا حرف حکمت بر زبان ناحکیم حله های آریت دان ای سلیم گرچه دزد هله پوشیده است دست تو چون گیردان ببریدده است چون شبانه از شطر آمد بزیر کرد گفتش منزلم دور است و دیر برنشستی اشترم را از پگاه جوره ها کردم کم از اخراج کاه گفت تا اکنون چه می کردیم پس؟ هوش تو کو نیست اندر خانه کس؟ تبل افلاسم بچرخ سابعه رفت و تو نشنیدهی بد واقعه گوش تو پر بوده است از طمع خام پس تم کر می کند کور ای غلام تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان مفلس است و مفلس است این قلتبان تا به شب گفتند و در صاحب شتور، بر نزد کو از تمع پر بود پر حاست بر سمع و بسر مهر خدا در حجب بس صورت است و بس صدا آن چه او خواهد رساند آن به چشم از جمال و از کمال و از کرشم وان چه او خواهد رساند آن به گوش از سما و از بشارت و از خروش کان پرچارست و هیچت چاره نی تا که نکشاید خدایت روزنه. گرچه تو هستی کنون غافل از آن وقت حاجت حق کند آن را آیان. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پای هر درد درمان آفرید لیک زاندرمان درمان نبینی رنگ و بو بحر درد خیش به فرمان او چشم را ای چار جو در لا مکان هین بنه چون چشم کشته سوی جان این جهان از بیجهت جهت پیدا شده است که زبیجایی جهان را جا شده است بازگرد از هست سوی نیستی طالب ربی و ربانی استی جای دخل است این آدم از وی مرم جای خرج است این وجود بیشکم کارگاه سن حق چون نیستیست، پس برون کارگاه بی قیمتیست. یادده ما را سخن‌های دقیق که تو رحم آورد آن، ای رفیق. هم دعا از تو، اجابت همز تو، ایمینی از تو، مهابت همز تو. گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن. مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی. گرچه جوی خون بود، نیلش کنی. اینچنین میناگری ها کار توست. اینچنین اکسیر ها اسرار توست. آب را و خاک را برهم زدی زاب و گل نقش تن آدم زدی نسبتش دادی و جفت و خال و عم با هزار اندیشه و شادی و غم باز بعضی را رهایی دادی زینغم و شادی جدایی داده ای از خیش و پیوند و سرشت کرده در چشم او هر خوب زشت هرچه محسوس است او رد می کند وانچه ناپیداست مصند می کند عشق او پیدا و معشوقش نهان یار بیرون فتنه او در جهان هین رها کن عشق های صورتی عشق بر صورت نه بر روی ستی آنچه چه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان آنچه بر صورت تو آشق گشته ای؟ چون برون شد جان، چرایش هشته ای؟ صورتش بر جاست، این سیریز چیست؟ آشقا، واجو، که معشوق تو کیست؟ آنچه چه محسوس است، اگر معشوق است، عاشق استی، هر که او را حس هست. چون وفا آن عشق افزون می کند، که وفا صورت دگرگون می کند. پرتب خورشید بر دیوار تافت، تابش آریتی دیوار یافت. بر کلوخ دل بندی، ای سلیم؟ وا طلب اصله، کتابت او مقیم ای که تو هم آشقی بر عقل خیش خیش بر صورت پرستان دیده بیش پرتو عقل است آن بر حس تو آریت میدان زهب بر مس تو چون زرندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو پیر خر چون فرشته بود همچون دیو شد کانملاحت اندر او آریه اندکندک اندکاندک می ستانند آن جمال اندکاندک خشک می گردد نهال رو نامر هو بخان، دل طلب کن، دل منی بر استخان کن جمال دل جمال باقی است دولتش از آب حیوان ساقی است خود هم او آب است و هم ساقی و مست هر یک شد چون تلسم تو شکست آن یکی را تو ندانی از قیاس بندگی کن جاش کم خانا شناس معنی تو صورت است و آریت بر مناسب شادی و بر قافیت معنی آن باشد که بستاند تو را بنیاز از نقش گرداند تو را معنی آن نبود که کور کار کر کند مرد را بر نقش آشقتر کند کور را قسمت خیال غمفزاست بهره چشم این خیالات فناست حرف قرآن را زریران معدنند خر نبینند و با پالان برزنند چون تو بینای پای خر رو که کجاست چند پالان دوزی ای پالان پرست خرچو هست آید یقین پالان تو را کم نگردد نان چو باشد جان تو را پشت خر دکان و مال و مکسب است در قلبت مایه ست قالب است. خربرهنه برنشین عیبول فزول. خربرهنه نک راکب شد رسول. النبی و قد راکب معروریا. و النبی و قیل سافر ماشیا. خر نفس تو بر میخیش بند، چند بگریزد زکار و بار چند بار صبر و شکر او را بردنیست خواه در صد سال و خواهی سی و بیست هیچ وازر وزر غیر بر نداشت هیچ کس ندرود تا چیز نکاشت تم اخام است آن مخور خام پسر خام خوردن علت آرد در بشر کنفلانی یافت گنج ناگهان من همان خواهم نکار و ندکان کار بخت است آن و آن هم نادر است کسب باید کرد تا تن قادر است کسب کردن گنج را مان کی است پامکش از کار آن خود در پی است تا نگردی تو گرفتار اگر که اگر این کردمی یا آن دگر که اگر گفتن رسول بافاق وفاق من کرد و گفت آن هست از نفاق کان منافق در اگر گفتن بمرد و از اگر گفتن بجز حسرت نبارد مسل آن غریب خانم جست از شتاب دوست بردش سوی خانه خراب گفت تو این را اگر سقف بوده پهلوی من تورا مسکن شده هم ایال تو بیا سودی اگر در میانه داشتی حجره دگر گفتاره پهلوی یاران خوش است لیک ای جان در اگر نتوان نشست این همه عالم طلبگار خوشند و از خوش ان اندر آتشند طالب زر گشت جمله پیر و خام لیک قلب از زر نداند چشم عام. پرتوی بر قلب زد خالص ببین بی محک زر را مکن از زن گزین گر داری گزین کن ورن رو نزد دانا خیشتن را کن گرو یا محک باید میان جان خیش ور ورندانی ره مرو تنها تو پیش بانگ غولان هست بانگ آشنا آشنایی که کشد سوی فنا بانگ می دارد که هانی کاروان سوی من آید، نک راه و نشان نام هر یک می برد غولی فلان تا کند آن خاجه را از آفلان چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر عمر زایه راه دور و روز دیر چون بود آن بانگ غول آخر بگو. مال خواهم، جا خواهم، وابرو. از درون خیش، این آوازها منع کن تا کشف گردت رازها. ذکر حق کن، بانگ غولان را بسوز. چشم نرگس را از این کرکست بدوز صبح کاذب را ز صادق واشناس رنگ می را بازدان از رنگ کاز تا بود که دیدگان هفت رنگ دیده پیدا کند صبر و درنگ رنگ ها بینی بجز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها گوهر چه، بلکه دریای شوی، آفتاب چرخ پیمای شوی کار کن در کارگه باشد نهان تو برو در کارگه بینش ایان، کار، چون بر کار کن پرده تنید، خارج آن کار نتوانیش دید. کارگه چون جای باش عامل است، آن که بیرون است از وی غافل است. پس درا در کارگه، یعنی آدم تا ببینی سن و سانه را به هم، کارگه چون جای روشندیدگیست پس برون کارگه پوشیدگیست رو به هستی داشت فرعون عنود لاجرم از کارگاهش کور بود لاجرم میخواست تبدیل قدر تا قضا را بازگرداند زدر خود قضا بر سبلت آن هیلمند زیر لب می کرد هر دم ریش خند صد هزاران طفل کشت او بیگنا تا بگردد حکم و تقدیر اله تا که موسی نبی ناید برون کرد در گردن هزاران ظلم و خون آن همه خون کرد و موسا زاده شد و از برای قهر او آماده شد گربه دیدی کارگاه لایزال دست و پایش خشک گشتی زهتیال اندرون خانش موسا معاف و از برون می کشت تفلان را گزاف همچه صاحب نفس کو تن پرورد بر دگر کس زن حقد می برد کین عدو و آن حسود و دشمن است خود حسود و دشمن و او آن تن است او چو موسی و تنش فرعون او او به بیرون می دود که کو ادو. نفسشان در خانه تن نازنین بردگر کس دست می بکین